شاه از بحر دفع ستمکاران است و شهنه برای خونخاران و قاضی مستهد جوی تراران. هرگز دو خسم به حق راضی پیش قاضی نروند. چو حق معاینه دانی که می بباید داد، به لوت به که به جنگا و دلتنگی، خراج اگر نگذارد کسی به تیب نفس، به قهر از او به و مزد سرهنگی،